سرخ. نویسنده و کارگردان پرویز شیختادی بازیگران سپیده گلچین شهربانو مهدی احمدی ابراهیم یوسف مرادیان کشیش هدرسیمان رزا افشار حاجساده محمد رضا داوود نژاد، حاج مختار. رضا صفایی پور، پدر آندره. سمیرا سیاه مادر علیار. شهاب الدین محمدی، آندره. علیرضا شیخ الاسلامی، سفر. رامتین تین فرید، غلام حسین. سینا بلگوری، علیار. اهنگ ساز علیرضا تهیه کننده مجید اسماعیلی دشتی پر از شاخه های بلند نی و علف های هر زفت کشیده که پسر بچه با ترس و لرز از بین اونها به سختی پاهاشو میکشه از چی ترسیده که هی برمیگرده پشت سرشونه؟ نکره؟ <متصفح> سر روش میباره مثل آسمون پر ابر بالای سرش که انگری بارش شروع میشه؟ <تصوح> مترسک. همچنین پسر بچی ترسون و لرزان تو دشت می و مدام به پشت سرش نگاه می کنه اون دستای مترسک رو پشت سرش احساس میکنه کنه یه جایی که دیگه تاب و توانه فرار نداره روی زمین میافته و دستاشو برای دفاع جلوی حمله مترسک میگیره. اما که مرتبه می‌بینی که پسر بچه اینکی همراه پسر بچه مطلایی که گردن بند سلیب به گردن داره اومدن بالای سرشو دارن بهش میخندن <صحیح> <صحیح> <صحیح> پسر بچه که لباس مدرسکا پوشیده دنبال علیار میدوه علیا. علیار علیار بایی تو کارت دارم علیار جونه با من بایی تو علیار اه تو سهریه میکنه بابایی شرخی کچولو کردم علیار ببینی که برات گرفتم سینه سرخ به قشنگه. با کف دستش محکم میزنه زیر دست پسر مطرسک پوش و سینه سرخ پر میده اونم پر می تو آسمون اوج میگیره. پسر مطرسک پوش با حسرت به گم شدن سینه سرخ تو آسمون خیره میشه. دو تا دست کوچیک که یکی از دست‌ها قیچی به دست دارن داره، داره های کوچیکی رو, رو روی پارچه سفید درست میکنه. حالا اون پارچه سفید با ستا سراخ روی توپ پلاستیکی میکشه که حالا توپ شبیه سر یه آدمی شده که انگار نقاب سنه ای این دستای علیاره که داره کشه آقل تونتون روی توپ و با رو کشمی پشونه جلیه خونه بزرگی چندین دیگ روی آتیش رو چند تا زن مشغول هم زدن دیگار شرخمان قلام حسین روی اصل میشونده و سایبونی رو که به زین وصل کرده داره محکم میکنه کجا آقا؟ ابراهیم همون مرد چشم درشت و مو گندمی از کنار شهربان رد میشه. شهربان سر غلام حسینو میبوسه و گردن بند دعایی رو به گردنش میده و بعد با یه لبخند بند کفشای غلام حسینو محکم میکنه. بوره دیگه. که رو کهو نشسته مردد به از اون طرف علیار که توپو تو پارچه سفید پیچیده و دنباله پارچه شده عین یه لباس سفید به سرعت از آقل دور از چشم دیگرون بیرون میاد و دو به سمت تفاهمی میره. مه قلیزی کوه و تپاها رو از هم جدا کرده تعدادی از مردم به سمت ساختمان کلیسا میرن کشیش که مرد جوون چشم روشنیه صلیب سرخ پوشی رو که با خودش آورده پارچه روی اونو کنار میزنه و برق طلایی مجسمی مسیح برق چشاشو چند برابر میکنه کشیش با شوق روی مجسمه تلایی دست میکشه و لبخند میزنه تکون شاخه های ها میگن که سرعت باد چقدره. البته بوریده های پارچه سفیدی هم که از زیر توپ علیار آویزونن میگن که باد از کدوم طرف میوزه. علیار با مطرسکش که با نخی به شاخه درخت بسته سر جاده منتظر. قولا سوار بر از آروم نستیک میشه. کشیش صلیب رو تو دستش گرفته و به چپراست جلوی... با آتیش گردونی که از اون دود زیادی بلنده بین جمعیت راه میره آمین. امیدوارم که دیگه خونه ی عشق رو خلوت نبینیم نه به خاطر این که ما صاحب یکی از تاریخی ترین و با ارزش شدین سلید باشم به خاطر خدا با آمرزش گناهان شکر میکنی تو بیرون بعد از چشم کشیش به سربچه اینکی از کلیسا میره بیرون مرد نسبتاً موسم با موهای یک دست زفید با پسر بچه متلایی میان پیش کشیش که مجسمه تلایی رو ببوسن نه نه دهانت بو میده گناهه <تصفيق> راست میگه دهانش بو میده <تصفيق> نه نمیده ابراهیم که کنار روحانی جوان استاده با اشاره روحانی ساکت میشه شورو؟ مرد نسبتاً موسن موسفید از گفته کشیش ناراحت میشه و همراه پسر وچید با قیز از کلیسا میرن بیرون بیگه این پیدا دمیشه فقط بیشت که درست محشه دور سیمونم خیب میکشه ما میتونیم این کلیسا رو به یکی از باشکوه ترین کلیسا های این منطقه تبدیل کنیم چارپایه رو بیارید باید ببریمش بالای بالا, بالا. همینطور که گام حسین زیر سایبون و سوار بر اسب از رو هدایت میکنه پرنده های بزرگی تو آسمون پر اب میگیره می حسین به نزدیکی درختی میرسه که اللیار پشتمون کمین کرده یهو علیار مترسک سفید رو رها میکنه و مترسک اول تو صورت اسب میخوره. گلا حسین که حسابی ترسیده نمیتونه اسب و مهار کنه اسب تو به پاش بلنگ میشه و دستاشو تو هوا نگه میداره. قلاموشن تمام سعیش رو می‌کنه که بتونه رو از خودشو نگاه داره اما از هرچی جابه‌جا میشه بیشتر به لبه‌ی پرده‌گان اسلپ میشه. قلاموشن پرسیده و علیر بیشتر از اون. انگار که دیو شده و که میشه هرچی شده بود. کنار عکس مریم مقدس وایساده و به زنجیری که روی زمین کشیده میشه نگاه میکنه وقتی زنجیر روی زمین پرت میشه صدای اون شاهبانو رو به هم می‌ریزه. کشیش مشغول کوبیدن میخوای برای نسب سلیبه و با شوق زیادی روی اونها میکوبه. علیار میره لبه دره و میبینه که غلام حسین دو تا به دو تا سنگ کوچیک گرفته که بیشتر سقوط نکنه. آه، آه. فکر که دیگه قدرت نداره و اون سُر میخوره رو سنگا و به سرعت پایین میره. علیار سر جاش میخکوب شده و با دهان باز خیره به سقوط فلامحسین. والا مصاح! علیار میگیره و به سرعت از دره پایین میره. زمانی علیار پایین دره میرسه که میبینه فلامحسین تو آب رودخونه شناوره. وقتی سریش با زنجیرش تاپ میخوره دل شهرانه به شور میاد و به سرعت از میگه. آه! الیار میره بالای سر غلام حسین اونو کشون کشون اعضاق میکشه بیرون بنا بنا یکو با ترس و لرز از بلند میشه چند قدم عقب عقب میره و به دو از اونجا دور میشه توی کلیسا با هدایت کشیش دو نفر دو سر زنجیر رو گرفتن و صلیب و بالا میکشند همه و به خصوص بچه‌ها چشم از مسیح طلایی بر نمی دارن. علیار گلیون سمت مترسکی که ساخته و با شدت اونو از شاخه میکنه و پرتش میکنه تو دره. مختار یه سمت روحانی و ابرانیم که دوچرخ روحانی رو میاره سمت دیگه شد. سلیبه به اون قشنگی رو برداشتن از اون ور دنیا هله که واقع ما رو نگاه کن انگار همین یعنی الان لشکر مغول عبقلش رد شده گرب داغون دیوار ریخته چی بگم والا چی بگم چی بگم یک حت خدا داریم حمتش ما شالله ما شالله حاج مختار بش بگو اونا قبرستونشون از قبرهای ما قشنگتره بفرما آقابت خاک گل کوزه گران خواهیم شد چیه قبراشون قشنگتره نمتره بریم اونجا بگیریم بخوابیم بنام قرار کار کار الیار حالا حرسش رو سر گزبندهی بیچاره حالی میکنه با ترکی افتاده پیشون رو محکم کمرش رو کمرشون میکوبه زبان بسته هم به دو میرن سمت آقل الیا به سرعت گسفنده رو جهن میکنه و زودتر از نوعید میبردشون آقل هم اومده گوشه آقل نشسته و سرشو تکیه داده به تخته های دیوار مشوشه و نفس نفس میزنه و فقط میتونه چشم تو چشم گسفنده بشه که دارن نگاش میکنن خات دوستش لاغر یه امروز و جای یکی از این زبونبسته ها بود که یهو با شنیدن شیه قاطر این برق از جاش بلند میشه و از لای تخته ها بیرون رو نگاه میکنه میبینی سفر داره قاطر قلاموسن هی میکنه البته با بوقه پلاستیکیش شهربانو که کنار دیگاه روب و جبه های گوجه فرنگی نشسته با دیدن قاطر سوار از جاش بلند میشه و به دون میاد سمت قاطر هر قدمی که شهربانو جلو میاد سفر دوتا قدم پس میره این چرا تنها آمده؟ من نبیرم من نبیرم ها؟ این ده بوده بودم من قبله من ده بودم چرا شیخته؟ ها؟ قلاباسه که؟ من نایرم من نایرم نمی شوی؟ قلاموسه این قلاموسه این من الان این کجا بود؟ دیاتو دیاتو دیاتو تو گفتی از سیاه که بره؟ آره؟ چی؟ قلاموسه این نی نمی بینی؟ <تصفح> فلطیه فلطیه میدنه میدنه خوره نیموند نیموند خوره نداره خوله خوره خل خل ابراهیم که تخته ای را رو روی زمین میکشه رها میکنه و به دو میاد سمت قاطر رو مبعوت با این دست میکشه علیار همچنان نفس باریده کشه آقال خزیده شو بچه نداختیم را باز یه کار ما به این گفتیم آم آره این قاطر رو نگاه موسیقی برز میگه ابروهیم ابراهیم چیه؟ چه باروره؟ آته تنها آمده خدا حاسه نیست کفشات شاید رفته پی بازی تو داری کجا میری؟ تو سیاکو بازه نکنی ها گرگ داره بگی <تصفيق> بگیر تو توبه و نزو کار میده دستمون <تصفيق> چه خبر شده؟ علیه اسم گرگ میده پشت کام ها قایم بشه گرگ حالا که درش میتو آقا صد دفعه به این زن شوهر گفتم خودتون از شرن این قاطعی چموش راحت کنین نکردن تا کار دادتشون اونم کجا تو سیاکو قزال این پسره علیار ورگشت پاهاشو ببند تا خودم بیام خدمتش ورسم نتونست یه چوبونه درست بشه نتونست یه بچه درستونه درست بیا باره کنار تو هم میگه گوزنده زبون نفهم بیا چرا؟ اینم بپوش سیاکو مختار علیه رو پیدا کردی جلو مردم نزنی شما بله. یعنی میگم نزنش بزنه آقا جون شما اینجا چی کار میکنی کیو بزنه آقا جون برم یخ نخواد یخ بیا تو بیا تو, تو, تو, تو, تو میفتی به همه دشتو پر کرده کوه از تپه بود دشت از دره قابل تمیز نیست شعبانو از کنار پرچینا که رد میشه قدم به قدم تمام اطراف رسد میکنه بلاخره هم جلیهی از بار قاطر رو زمین کنار سین خاردارای پرچین پیدا میکنه. کنه الیا به دو از آقایی بیرون حتما داره میره رسند رود کنه که آخرین بار قلام شهرپانو جلیه رو پیدا کرد که سربچه چرا قوه قلام حسین پیدا میکنه همینطور که جاده رو خم به خم تایی میکنه باسته که پارچه رو از بار قاطر قلام پیدا میکنه از اون طرف علیار به دو میره سمت رو دونه. حالا علیار قلاموسین رو گرفته رو پولش و به سختی اونو تو تاریکی میکشه. علیار قلاموسین رو کشون, کشون میاره پای تخت سنگی و روش و با کل شاخ و برگ درخت میپوشونه. حالا، حالا همینطور که برگار رو روی صورت قلام حسین می‌ذاره اشکاش همچنان سرازیرن. بالا با نزدیک شدن مادر قلاموسین که با چراق قوه از وسط رودخونه داره نزدیک میشه علیار میره پشت بوته یا قایم میشه نزدیک شدن مادر قلاموسین نمیکنه شهر بانون نفس بریده به پسرش نزدیک و نزدیک میشه همونجور به بوته ی که علیار پشتش قایم شده. زن دیگه اشکی براش نمونده مبغوت و سردرگم پای درختی نشسته و فقط سر میچرخونه به اطراف تو تاریکی بلید. نفس علیار دیگه در نمیاد چشاش دو دو میزنن که صدای ابراهیم دلهورهشو بیشتر میکنه آلو. ابراهیم که داره دور خودش میچرخه و چرا قوه رو حالا متوجه صدا میشه سرم بارو. عزیز دل مادر مادر از پادر اومدم قلو حسینم کجای مادر بارو. بارو. ابراهیم بارو. ابراهیم من اینجا! ابراهیم من اینجا ابراهیم من اینجا ابراهیم بالا پوشش رو روی دوش شهربانو می‌ندازه و اونا کم کم از قلام دور میشن و نفس راحتی میکشه وقتی اونا دور و دورتر میشن علیار چشاشو میبنده و انگار تازه اجازه میده نفسش بیاد بالا موقع که داره به از سمت خونه سفر جلوشو میگیره ادا ادا دو نفتی قلام بدان تعدی ادا نا ناره آها بابا آسر آن میخوده داره آ درمی کنه مردان درمی کنه مردان درمی سفر به حراس و فرار علیار میخنده بزرگ زیر لحاف کنار دیوار خوابیده و مادر علیا چند تا زغال تو آتیش گرد و میذاره و میره گوشه ای اونو تو هوا میگردونه بابا آتر میگده معلوم هست ننه بابای تو کجان؟ با دوار خونتون میگم برو بیا بینم راست میگه خاطر بکوشن. بکوشنش به جهنم حقشه به ما رفتی نداره کتک کردی حقه کتک بخوری من میتره صبح تاله کجا بوده بسته دیگه مرگ که دست منو تو اون زبون بسته نیست بس دست خودش. ای به خود آنخود ایش کس نمیره نکه وقتی ابراهیم تو آتیش زنده نگه میداره امان از آتیش امان از بی اگه تو بوده مادر علی کلی اسپن تو آتیش میریزه و دودش تمام خونه رو پر میکنه اون که گاو ارمنی و مادر حضرت ابراهیم رو میگم پیغمبر خدا دختی صورت باید زندش گر. اصلا نذاش بسوزه من نمیفهمم تو مدرسه چی بهت یاد میدن؟ خرامشه این مدرسه اگه من با خدا بگم مرد رو زنده میکنه فکری مسیح شدی مورد زنده کنی مورد دیگه یخ برای مرد خوبه یخ میخوام حالا به هم خورده دیم مرد مرد مسیح که پیغمبر خدا بود پاک بود معصوم بود دم مسیح هایی ببین اصلا کی گفته قلاباسه این مرده ها دمشه نفس، نفس مسیحایی چی داره؟ تو داری؟ قابی، بابا جون قابیل داره پس میگه؟ نه مادر یه چیزی میگه قابل برادرش قابیل رو کشت بعدم دیگه نتونست زندش کنه نمیخوری سوپ تو؟ قابیل چیزی داشته کشت؟ چه میدونم؟ اون موقع که توفنگ و اینجور چیزا نبوده که با سنگی، شاخ گاوی چیزی کشتتش؟ برادر میکشی یهودا چرا چرا هی hey, آتیش دل و نگاه علیار بیشتر و بیشتر میشه و با چرخش گردن تمام لحظات شون سقوط سقوط حسین برای علیار زنده میشن آقای خوابش برده و با صدای پدر مادرش یک از رو میپرد مقدار چی شد؟ هیچ تمام سیاکورم گشت تا شهبانو که؟ دارم میام پسرمونه این پسری گلت که؟ ندیدیش علیه رو؟ من نیدمش همین طرف بچه داره بازی میکنه دیگه. حالا اینقدر حرص نخوار بیا تو بیا دونی چایی بخور بیا تو یه چایی بخور بسرمیم به محض اینکه که مختار عصبانی میره تو خونه علیار در آقل باز میکنه و به دو میاد بیرون که یکو خودشو جلوی مادر خمیده قلاموسای میبینه و رویشو کج میکنه سینم کجاست علیار برادرت کجاست علیار یارت کجاست با این جمعه شهرانو علیار سر میخکوب میشه قاتاالیار از, از جاش نمیتونه تکون بخوره که شهربانو میاد سمتش و اونو تو آغوش میگیره و میبوسدش الار وی حسینم آمدی <تصفيق> ببرش این بیوفا رو الیار این بیوفا رو از خونه ببر چقدر تا میره سمت قاتل که افسارشو بگیره قاتل رم میکنه و به سرعت سرش از علیار دور میکنه ببرش علیار کن دورش کن سب کن علیار یه برای حسین هم غذا ببر آب ببر بگو قضا خوردی برگرد بهش بگو ببین قضا تو بوی مادر میده بوی خبه چکر یا علیه یا حسینم گرست نست سب کن علیه علیه سب کن حسینم گرست نست حسینم تش الیار صحب کن علیار صحب کن علیار, علیار که بدو از شهربان دور میشه تو جاده با ابراهیم روبرو میشه و با ترس و لرز از اون هم فرار میکنه ابراهیم هم با بحت فرارشو نگاه میکنه علیار به دو میاد پای آبشار همون جایی که غلام حسین مخفی کرده میاد بالای سرشو دست میبره زیری گردنشو سرشو بلند میکنه و میبوسدش نمیشی. خوبیش گلام جا باشی باشی تو باز روی گلام با برگ و شاخه میپوشونه پشونه یه از کفشای گلام از پشت در میاره و با خودش میبره دیمان <تصفح> برای بادره که گرگر میبره علیار به دو خودشو به حسار خونه قلام و میرسونه و بند کفشای اونو به سیم خاردار گره میزنه حسابی مراقبه کی کسی نبیندش علیار از پای پنجره کلاس دولار دولا رد میشه و به دیوار کنار پنجری خودشو میچسمونه و توی کلاسو نگاه میکنه علیار چه مرگه چه چه مدرسه نرفتی؟ اینجا چیکار کار میکنی؟ یالا ببینم چنگم رو بهتم خاطر تو رو دعوا کنه من نمیذارم همش حقیره منه بشکن این دست حقته تو اصلا دلت میخواد کتک بخوری یاره یالا ببینن وقتی آندره سوال میپرسه علیاد چشم از گردن بند سلیبش بر نمی داره کشششو بند و زیرلخت شروع به زنزمه میکنه باجو آوا آوا اداده اداده آ آ ای اول اوه خوناموده ما یه آقا اجازه ما تو دیدیم جای مورد گل می‌زنه آقا اجازه میگن قاتل قاتل آوا آلا ای آسه آسه دادا اصا اصا میخا میخوسا آقا اجازه قطاره قاتل, قاتل مترادفن <تصفيق> یاد می‌گیری گازونی یاد روزای با هم بودنش با غلامرضا میافته که چطور با هم زیر بارون از مدرسه برمیگشتن سینم کجاست علی اوه مادر کجاست علی اوه یاد کجاست فقط دیگه تو تو خودشو با اندره آنتر، اندره اندره چون نیمدی بدرسته بری ای. بری تو میتونی مرده زنده کنی؟ چی؟ مرده؟ من یه باری رو کشتم هر کاری که کردم زنده نشد هنوز یادمه چشاش اینجوری به این خیله شده بودن بگه تو مسیح نیستی؟ مسیحی هستم ولی مسیح که نیستم چی مرده؟ اون آهه بسطن دعا میخونه پدر سیمون مرده؟ نه نه میتونه مرده رو زنده کنه؟ تا حالا ازش نپرسیدم. اما خیلی مرد خوبیه بابام میگه خیلی چیزا ازش شیده خیلی قبولش دارن حالا کی مرده؟ اون دوستا با هم از وسط باقه سید میزرن. از <تصفح> کجاست؟ یه لحظه صد بودی بسید شاید رفت باشه که. نمیشه وقتی باقش اینجا کجا بره ها تو دنباله گیلس اومدی یا البالو قردنیار در سیمان سلام پدر سیمان از بالای درخت گردوی تا آندره پرتاب میکنه این الیار اومده میشناستمش پسر مختار بله بله گردو بردار برا بابا تم ببر یار دنبال یکی میگرده که مثل مسیح باشه مرده رو زنده کنه چی مرده؟ همین جوری علا خب علا یار شنیدی آندره چی گفت؟ گفت چی؟ مثل مسیح نه مثل پدر سیمون پدر سیمون با مختار هیچ فرقی نداره هر دومون کشاورزیمو چی؟ بندهی خدا خنده رو لبای علیار میخوشی مگه حضرت مسی بنده خدا نبود فرستاده خدا بود دم مسیحایی داشت کسی مرده؟ خلا موسیقه. دوستا چرا دروغ میگی؟ خلا موسیم که نمرده گم شده برو برو از این فکر نکن علایار برو دعا کن پیداشه همین گردو ببرین تو راه بخورین شمایی هنوز علیار نامید نشد پدر سیمون کف دستش ها میکنه هیچی اگه داشتم الان بابام زنده بود خیلی مرد خوبی بود بگو خدا رحمتش کنه خدا رحمتش اندره سرای اینچ نه گاردزو و میره رو. را با درهای حلیار سربزه رو بغزاره راهش رو میگیره و میره با دور شدن بچه ها به اطراف نگاهی میندازه و باز کف دستش رو روبروی صورتش میگیره و ها میکنه و همین موقع شاقی زیرپاش پاش می و اون به سرعت میفته پایین یک ریز عشق میرزه و از پنجاری کلیسا چشمی دوزه به مجسمه تلایی مسی می‌بینی یک قفله چی میگه هر اشی کلیسه نمیرم میگه این مسیحه تو رو خدا زمکه دیر میشه آنره میتونی به من بدی؟ سریبی به مقدسه. دیونه شدی؟ مگه باله منه؟ واقعی نه نه نه نمیشه اگه بفهمم بابا منه میکشه دیدی دستوشو، گامو میکشه اصل تو هم کده میکنه آسه خودم دیدمش تفظیر من بود، من چطوری؟ سیاکو ترسونمش از رقوات رفتا رفتای دره چی oh, oh. کنم بگم؟ بگم من کشتمش آدری تاشب ولی میکشم نه نه خدا پدر ص رو تماشا میکنه هر کاری کردم ش بهش دست بزنه تا باده دراز داش دست میذانی نه اصلا نه نه اصلا ا رو کن نه اصلا نمیشه جایی نه نمیشه. نه <تصفيق> <نصفيق> نه نمیشه. حالا هر دوشون رو به روی مهرا و زیره سریع ای رفته روی تخته که روی میزی گذاشتن و پای آن را رو محکم گرفته و آن هم مشغول باز کردن زنجرره سلیب. زنجیره و صلیب سلیب آویخته از یه سمت چوگو به حرکت میکنه و تو هوا به این طرف و اون طرف میره موارو ببخش موارو خدای خدا با خدای موارو بکنه با خدا با خودمسی کاره بایی موارو ببکنه خیلی به خودمش بگونی هرشون هنگه تفسیره با دست بگه همش تفسیره موره آن رو بگوراید به اول فس بیگناه به امام حسین بیگناه منم بیگنام حالا هندره صلیب و بغل گرفته و علیارم پیش از طب بالا میرد شما رو قبرت به سلیب میذارید مردات می زنده بشن نه اوبام میگه پدر دو روحه مو میخوند نشونه پسر خداست که به خاطر ما رفلی و سلیب. اینجا نه فکر کنم تو فلسطین چی میتونه پسر خدا رو کشته؟ باشه حتما کار شیطونه باما اسمشو گفته آیا نه یه چی بودی آدم اسمشو بود مسی بود نه مسیح موسلمون نبود چی بود چیز بودم مسیح پسر خدا بود بابام میگه تف تفی تفسیر داره معناه الان همه ما پسر خدا بودیم بابام میگه از صرف خدا آمده بود تا ما رو آدم کنه اما نتونست چرا قواتشان نشد ردیمه های شما اونو کشتن نه خیرم های ما کسی نکشتن از تو خود آدم کشتی من خود خودم آسانه نکشتی من که نمیخواستم بکشم از این میخواب به دستش نزدم به پاش نزدم این دوتا ها از وسط قبرستون مسیحه ها میگذرد سرش خار نزده قایمش کردم تا گوگان نخورنه دوستش داشتن قدیمی شما به ما موسیقی کشتن پچه هاشم کشتن از گوگان قایمش نکردن بابام همه اینا رو به این گفته اونم میخواست آدم بدا رو خوب کنه نه تو نه نه حالا رسیدن کنار امامزاده علیه <t> این <rip> قبر امامزاده مگه نیست نه فقط سهیده سود باش بریم تو دیرش بده نیست شرا هست بیا بریم ببینیم شاید تو امامزاده شما این چیزه مثل به ما باشه اون رقبه با امینه نذاریم سرداش واقع کن به خدا هم سر من هم سر تو با ام بابا وسترن تنان مسیای گفت تا به امامزاده اندری کنار درخت می‌گذره و علیا رو کشون کشون می‌بره سمت امامزاده. و صوفیا. داره امامزاده بازه و اونا میان تو و اندره اشاره میکنه به پرچما و کلاه خدای آویخته از دیوار امامزاده. ها علی یار تجدید شدی بله این از کجا فرمید تو تجدید شدی حتما خودشه راستی آن داره درسته دیگه آندره از ادعا سیمون اون سلیب قشنگ شخبه شنیدم خیلی سرخاله بود آقا. سلام میرسوند آقا اینجا مرده شفا میده. میدن مرده که نیاز به شفا نداره این گرفتاران که به شفا نیاز دارن مریض داری؟ نه یه مرده داریم آندره، به پدرت میگم اومدی اینجا مستر بازی ها؟ مرده داریم یعنی چی؟ آسه ترخ داریم میخوام بدونم کسی مرده. نه بابا جون اگر قرار بشه مرده ها زنده بشن فکرش هم خطرناکه برای کاری اومدین؟ بله بله خستگی که در کنیم بیدیم. دست به چیزی ندن اینا برای بهترین چیز فاتح است. زنده کردن مرده دم مسیحهایی میخواد که اونم دیگه هیچ گیر نمیاد آقا سید عباب سر از امام میره بیرون آندره مراقبه و چشم از آقا سید داره. میخواد ببینه چقدر دور میشه حلیار میره گوشه امامزاده و سر به دیوار چشم از کلاه پرسفید برنمی داره. یکو چهره غلامحسین کنار کلاه به نظرش میاد داره آره خیلی نمردی. با این حرف علیار آندره با قیز از امامزاده میره بیرون و به دو میره سمت صلیب اونو بر و راه میفته سمت کلیسا علیار مستثله با چشمی چرخونه دور امامزاده به لحره علیارم با کلا خود پرسفی در حالی که پارچه سبزی رو دور اون پیچیده به دو از امام میاد بیرون هنگه تو رو خودستم هنگه یه بحث بحث هنگه تو رو خودستم کارت دارم گلد سفا دیدی چه خود چه کردی؟ مگه چی شده؟ اله همه میرزن تو کلیسا موسیع اونم مسی مسلمونه. صلیب ما به دردشته میخوره. خب مسیح مسلمونه دیگه. خدا رو میپرستی. نه اخرا مسیح مسیحی بود. قبلش که مسیح مسیح بشه. مسیح. بود؟ تو که مسی نوتو مسی بشه. مسی. بچه‌ت رو نمیدونم. چه تمامون. وای با. بده شو توبایگه. بگو علیات نامرد دوز اونها رو برگشته هرچی میخواه که فوشم بده بزم کلامو سیر زنده کنم من همشتی بکنم تو داری و من که دروغه میگی خودم باید بیام ببینم یه احساس درمی داره به من میگه تو یه کلکی که کارتا ای تو رو ندیده بودم باشه. حالا هر دو یکی سلیب به دست و اون یکی کلاه خود به دست افتادن سمت خلام و که از دور حاج صادق روحانی دهو میبینن که سوار دوچرخه تو جاده بالاییه اوه اوه اوه ببین چی داره یاد باش ازش بپرست چند دوار نشده باشه حاج صادق واسی که نیست میدونم ماما با با پدرسان و مسیح گریه میکردم. واسه ماموسین هم گریه میکن اصلا این دیتا همش با هم روزه میخونن و گریه میکنن به جان خودم ببین چه قشبیه مسیحه مسیحه آنریب به دو میرسلی به پشت بوتوها قایم میکنه و تو ها میرسه نیت کنر علی ها روانیس بادا باشه بایده بایده. سلام علیکم و رحمت الله چه؟ پدر سیمون یک شنبه رو گم کرده نه نه نه فکر کنم آنه زنگ رو میکنه زنگ <تصفيق> علیه از قلاموزین چه خبر فکر تو همون فکر نکنی بهتره آه. آقا <تصفيق> میشه مرده زنده بشه چرا نمیشه تو خدا میشه چه حاج صادق نگاهی پرشوق به کوههای سرسبز روبرو میندازه که به زحمت از پشت مه قلیس خود نمایی می کنه روز قیامت روز قیامت و حالا بدون نگاهی به بچه رکاب می به دور می حلیار و آندره کنار صلیب و کلاخود رو زمین دراز کشیدن و از پشت بوتها دارن جار و جنجال ابراهیم رو تماشا میکنن که میخواد قاطل رو بکشه چند تا مرد دستای ابراهیم رو گرفتن اما حریفش نمیشن که یکی سفر با بغش بچه رو میترسونه کده بری سرقه خودمون گوه میا ایسیه چوبه سرقه بازه میاش میان میان ببین سفر حول ما رو نگیر اصلا بخوایم مرده بازی کنیم دوستانو ببینی احا فهم میدم من منم آلاتی بابا کسو بانا من میباریم تو تو تو تو خوب نیم تو تو بابا بروی میخونم تو تو تو تو دری سرمن آبودگاه آه باه بروی میخونم بابا درور نبیرم نهده نهده موده نفت تو تو دری تو چی کارش که نوا نوا نوا در در دری تو سفر دستاشو باز میکنه به طرف این خودشو پرد میکنه روی چانه خریم یکو چشمش به مادر قلاموسای میفته که سر یه تپه آروم واسده و تکونه نمیخوره باز عشقای علیار سرازیر میشن مادر غلام حسن خیره به ناکجا ذرهی حرکت نمی کنه و عشقای علیار هم بند نمیان پدر سیمون عصبانی میاد دکنه آهنگری پدر اندره جارا جارا پسرت دزدی کرده پسرت صلیب منو رو دزدیده صلیب تو صلیب کلیسا رو پدر آندره مبهود دست از کار میکشه و را میفته بچه ها آندره علیا رو سفر اومدن در منگاه دکتر دکتر فقط میتونه به زنده ها کمک کنه تا نمیرن من باز رفتم یکو دکتر که حسابي کلافهس یقه سفرو میگیره دست شفا چی خب adam میگه غلط کردم دست شفا یعنی چی خب ها می یعنی چی می خواهی با این دستم بزنم که ببینی که شفا کنم دیگه هیچ چی پوستت می کنه ها اینا حرفا چی میذنی خب غلط می میدی چرا چند نفر کشته اینجا اما من که مردم اسیره تو من هی میگه کردم اه. آه. امشب که روات با بیاد میدونم بگم بل چه برای بل... سر اون زبونت بیارم برو تو نکشمت سفر با قهقه از مطب دکتر میره بیرون آقا ببخشی بس شما چود این نرگست زنده کردید هرکی که نفس نفس بزنه که دم مسیحایی نیست مرگسم حالش بد شد منم بهش تنفس مصنوعی دادم همه بلدن اینم هم یه چیزی برای خودش گفت حالا کی مرده الیار بدون جواب سرش زیر میندازه و پشت سرش آن میاد بیرون باز هر دا سلیب رو میگیرن و دوششون رو را میفته. پدر آندره به تاخت داره پی بسرش میکرد آندره آندره آندره وای مقالت آندره آندره آندره و علیار با کلا خود و سلیب به سختی استقلاح رو بندار پایی حسابی خسته شده و فقط پارچه سبز دور کلاخود خودو گذاشته روشونش علیارم کلا خودو گذاشته سر سلیب و با تمام قدرت راه میگه هر بزرگ و سفید اسیر باد و خوش رخصی میکنه حالا علیار خسته و بریده سریع و به تکیه میده و پیشونیشو چسبنده به اون پارچه رو از دوشش میندازه رو زمین و حالا اون صریب به دوش میکشه الیارم پارچه سبز و میندازه رو دوشش سفر به دو به اونو نزدیک میشه اما نه یه لحظه نیست و تصمیم میگیره از راه میونبور بره پدر آندره همچنان پی پسرشه بین بلند آندره با الیار کنار کلا خود و سریب و زمین کشیدن اما علیار کفش قلام حسین گذاشته روبروش و چشم ازش به هر نمیده علی بیا برگردین بکنم همش خالی بندیه چی؟ همین الان مسیحه دیگه خیلی خسته شدم با صدای پرنده ها علیه ها میافته دلش اندره اندره با شنیدن صدای پدرش به نفسش بند اومده الیو جری دهن مادر رو میگیره و اونم میخوابونه و پارچه سبز میکشه رو هر دوشون. بابا. علیا بابا ولم کن. علیا بابا. اینا من نمیکشم. ای. آخ. اینو میشتم. آخ. اینو میشتم. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آخ. آندره آندره یه زیر پارچه سفز نفسشون در نمیاد پدر آندره عصدش رو هی میکنه و میتازه هر نسل که میگذره پیشتر نفس بچه به شماره میفته یکی داره نزدیک میشه چشمای بچه داره از حدقی بیرون میزنه دستی پارچه رو از روشون بر میداره لب بابا سفره سندری و علیار سلیب کلا خود رو دوششون گرفتن و سفردارشون میچرخه بالاخره رسیدن یار بالای دره با دست جای قلامحسینو نشون میده اما نمیتونه حتی سمت رودخونه نگاه بندازه. که به عمق دره و فاصلهشون تا رودخونه نگاه میکنه، نگاهی با تعجب وعلیار میندازه. ها خسته شدن از بر رو زمین میگذارن که یکو کلاهخود از روی صلیب میلغزه به پایین و پایین سقوط میکنه. بچه‌ها میون رو بگیرن که صلیبم پشت سر کلاهخود روونه میشه. بچه‌ها دستشون به هیچ کدوم نمیرسه و فقط صلیب و کلاهخودو میبینن که چطور به سمت رودخونه روانن. دیگه بدتر از این علیار دیگه نای براش نمونده. پیشونه رو روی خاک میذاره اما آندره میگه یه طوری خودشو به رختخونه برسونه. سفر هم فقط بود دستش بزنه. حالا هرسه شون وصف رودخانان دنبال گمشده هاشون میگردن که یکو رد پاچه سخز و مسیح و تلایی رو علیه پیدا میکنه و توی آب به سختی دنبالشون میده آندره اجازه ممیده علیه دست دست سلیب بزنه خودش سلیب ها از توی آب بلند میکنه و به دقت همه جاشو بارسی میکنه سختی سلیب از توی آب بیرون میکشه آخه تو چی بخواییه چی رو من علیه وسط آب ایست داده که کلاخود و آب میاره کشه پاشم و خم میشه کلاخود رو برداره پن این که کلاخود برمیداره متوجه میشه انتهای پاچه خود به انتهای سلیب گیر کرده و هم جدا نمیشه حالا آندره و الیار چشم شد. دو چشم میشن دروت تو فقط رهاز سلیب رو کنی هسود کومارده ها همونو میخواستی آندره با غذب پارچه رو از میخایی انتهای سلیب میکنه و به سختی سلیبو میکشه تا از رودخونه ببره بیرون سفرم مدام سرت کنید علیار خود به بغل جهد خلاف آندره از رودخونه میره بیرون آندره رفته تو فکر نمیدونه بعد چی کار کنه بالاخره علیار آندره و سفر رو میبره بالای سر قلام حسین. سفر و آندره مبهوت و هم نگاه میکنن آندری نوازش بند اومده و علیا با التماس بهش نگاه میکنه تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو سفر من نبودم تو تو تو تو تو سفر وایسا سفر کفش خلام حسین برداشته و میدوه سمت بالای طبه سفر وایسا سفر من نبودم سفر وایسا سفر تایی دیگه سفر وایسا سفر نرا سفر برده سفر سفر تو دو دان میخود خواه خواهب خواهب خواهب خودش از رو خود دیرام دار بلکه نروخواستم با کشمش من میخودی؟ نه سلام بایسا! سلام با منو گوش کن. علیورتو گوش. تنهایی کش. حالا آندره با حرفی که زده روش نمیشه تو چشمای علیار نگاه کنه. سرشو زیر انداخته و فقط به زمین خیره شده. علیار سادیو گذاشته رو بدن خاله حسین و خودش کنار مدسن قلعه مسیح نشسته. فقط میخواستم باش باورشو بکنم. ببین. چی سرش شما؟ بقید یه با تو رو به امام تو رو تو بلدی شاید برخواد بوش کلا خودم گذاشته پالای سرش خشم شده روی مجسمه و به گوشش به آرمانی چیزایی میگفت. <تصفيق> آلیون صلیب رو بغل کرده و صورتش رو رو مجسمه تلایی پدر سیمون جلوی دوچرخه حاج صادق نشسته. مگه که نگفتی نکردی یار دنبال صلیب بوده. ها؟ نمیدونم. حرف از مرده میزدن. دنبال دم مسیحایی میگشتن. آنزه شما هم که باش بود؟ مسعود عزیز من پیامبر خدا بود ما هم دوستش داریم فقط دوستش داریم نه قبولش داریم بشه اعتقاد داریم ولی آدمی که سلاح کار خودش رو نمیدونه میدونه خودش آفریده خودش هم سلاح بنداشو میدونه هر موقع هم لازم شد یه پیامبری با قوانین جدید میفرسه اعتراض داری بفرمایید اعتراض کنید داره شب میشه علی من با رو برگردم بابر بیچارم میکنن بازارم شب اینجا باشه آخه مسیح که اینقدر طولش نمیده تو یه آدم کشتی گناهت بزرگه گناهت خیلی بزرگه نه نمیشه فقط نمیشه رسمو میگه هرکی سیاه بشه دیگه خدا به حرفش بشه نمیده حالا کلاه خودو گذاشتن بالای صلیب و علیار صورتش رو گذاشته رو سینه قلاماسایین مالا ما شده؟ نه اما یه ذره صورتت قیر نشده ولی صادق بگه اگه هر چقدر گناه کرده باشی اگه آدم بشه خدا میبخشه درو گفته هر آروم سرش رو بالا میاره و تو چشمای آندره نگاه میکنه خدا بزنه الیار چشمش به دهن اندره است انگار باید آندره حرفای حاج صادق رو هم تعیید کنه حالا دیگه الیار هیچی نمیگه با آندره دیگه تا به نگاه کردن به چشمای خواهش الیار رو نداره آندره سرش رو به سلیب تکیه داده و الیار با صورتش رو میذاره روسی سینه گلاموسین از اون طرف سفر بنده کفش گلاموسین تو دستش و به دو به سمت خونشون میده تا همه رو خبر کنه. یعنی میخوای بگی ان جیل ما ناقصه؟ این عقل ماز چه ناقصه؟ ببین چرا جهیا رو قبل از من سیترست ها؟ موه چرا قبل از همه ترست؟ اینقدر اطلاعات از تناوات تو برخه من نکش. من سلیومو میخوام. عزیزم من خودم میگم یه صلیب به سابی حسابی او... وسط درست میکنم دیگه. من خودم میگم کردم برای یه سلیو به خوب درست میکنم. الله چرا چی شده؟ کنه بوده سیاکو تو سیاکو؟ آبا پرتفلا میگه سیاکو رو ما گشتیم خودمون سلیب بزرگه کجاست؟ در این سلیب سپو کنه خوده پارچه چی شد؟ کنه در این پور. شهرانو تو کفش پسرش رو دست سفر میبینه لنگ لنگون راه میفته روی سنگ بالای سر غلام حسین کلی شم روشن کردن بذو برم بذو برم ولی منی میکشم دوستاری؟ یکم دیگه ببین نگاه کن نفس نمیکشه نگاه کن این فقط یه است با دست روستش یاده. خودش که نیست تو نگاه کن دیگه اندره سلیبو روی زمین میکشه و علیار با التماس پای مسیحو گرفته داره به من نگاه میکن تو رو خدا نبری خدا چوبیه به عبالفز این مسیح نیست اون پیش خداست بذار علی دوستانی بابام اینجوری بزنه تو سرم آره نه. علیار با التماس تو صورت مجسمه خیره شده بزا برم علی بزا برم دستای علیار روی پاهای مسیح شروع می به لرزیدن آندره آروم دستای علیار از پاهای مسیح جدا می کنه. همینطور که آندره دستاشو دور سینه مسیح حلقه کرده و سریع با روی زمین میکشه الیار با قصه و التماس به رفتن اونا خیره شد بعد از رفتن سلی با آندره الیار به سرعت به سمت سنت قلاماسای میاد تانتون روی صورت غلام حسینو با شاخه ها باز میپوشونه. پوشونه از نیست زنده کنه. هیچ کس دیگه نیست همه رفته دیگه هیچ نیست. آخرین دلگرمی های علیار مثل شعله های این چند تا شمه که معلوم نیست چقدر میتونن جلوی این باد دوام بیارن دهی بارشی که الیار پیش دستی میکنه و زودتر میبار. بذار کجا آندره که بالای تپه رسیده صدای فریاد رو که میشنوه نید برگرده اما به راهش ادامه میده همه ده راه افتادن پی آندره و آندره با صلیب داره از بین قبرهای قبرستون مسیحی میگذره که زیر بارون دیگه تاب نمیاره و روزانواش میشینه و سرشو به مجسمه طلایی تکی میده که یه حس سنگینی سایی رو اسمی میکنه. سرشو که برمیگردونه پدرش رو میبینه. نفسش بند اومده و نمیتونه نگاهش از پدرش بگیره. هلیار کلا خود رو گذاشته روی شاخه درختی بالای سر غلام حسین خودش به پهلو کنارون خوابی ده بگم با سرتون رو گشتم دارت هلیار دارت هلیار دستاشو تو سینش قفل کرده و پاهاشو تو سینش جمع کرده و این بیت داره میلرزه. یه قطره کوچی که بارون آخرین شله شمد هم خاموش میکنه مادر غلامحسین همین تو که داره به سرعت فشنگی رو داخل تفنگ شکاری جا از بین زنهای همسایه رو باز میکنه و میره سمت قاطر و نشونه میگیره ماشه رو میکشه اما هرچی سعی میکنه گلوله شلیک نمیشه. میفشنگ باز جوبی کنه که فشنگ از دستش میفته تو آب. فشنگو بر میداره و دوباره تو تفنگ میذاره و باز آماده شلیک میشه. سمت قاطر نشونه میگیره. تمام سعیشو میکنه فشنگ رو دوباره آماده پدر آندره شلاقو توری به سمت اون پرتاب میکنه که سلیب از دستش میفته تو آب و گل. جورا... میکنه. شده. آباد بود. پدر. و آ، میکنه. آبری شده. یا بابا تو یا درست. پدر شلاقو با عصبانیت دور دستش میپیچه و دور سرش میگردونه و فرود میاره. مادر اقلامسین خسته از تلاش بیفایده سر به لوله یه توفنگ روی زمین میشین آنره به صورت رو زمین افتاده و از ترس و درد تمام بدنش میلرزه آ از اون طرف علیار زیر یه عالم شاخ و برگ درخت و قطرهای بارون کنار قلامو حسین خامیده و نفسش به شماره افتادن بسینا رو هم برگردو یه بسیم جا بسیم این هم دراندار کرد بنام بکنم سر بسیم پدر اندرسالیبو به درختی و با آسین پیرهنش مجسمه تلایی رو تمیز میکنه بسیم آنینه یا ایسانه سر مام دیامو ماته. یازه. یازه. یازه. یازه. یازه یازه یازه به محض گفتن این کلمات هزاران پرنده به پرواز میانا آخسمون رو سرخ میکنن. ابراهیم با چیشمدهان باز وسط حجوم این رنده ها مبهوته. رنگ نوشته های روی کلاخود با قطرهای بارون شسته میشن و مثل جوی خونجاری. کنار سریع پدر آندره تازه متوجه بیجون شدن پسرش شده. اونو تو آغوش گرفته و نوازش میکنه. خدا کنه دیر نشده باشه. خون از سلیب جاریه و پای صلیب حسچه سرخ رنگی درست شده شهر همچنان پای توفنگ به استقاظه مشغوله الیار کنار قلامحسین خوابش برده در حالی که دستش روسی سینه قلامحسینه انگشتای قلامحسین یکی یکی تو مسیر جریان سرخ رنگ پای کلاه خود نم نم تکون می‌خورن دونه دونه قطرهای بارون که رو لبای آندره که جون دوباره‌ای به اونی بخشه حالا که قلامحسین دستش رو آروم بلند می‌کنه و رو دست الیار می‌ذاره بارونم با شوق بیشتری می‌باره وقتی دست قلامحسین دست الیار رو پیدا می‌کنه آندره چشاشو به سمت آسمون باز می‌کنه به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند نحال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند سرشك گیران را چو دریابند در یابند رخ مهر از صهرخیزان نگردانند اگر دانند عزیزان شنونده سپاسگزاریم گذاریم که باز هم دقایق و لحظاتی رو در کنار من ملیه شبانیان نویسنده و راوی این رادیوفیلم فیلم به همراه بزرگواران علی حاجی نوروزی، صدا بردار و فرشاد آزرنیا تهیه کننده گذاروندیم. امیدوارم ما رو به وقت دعا به یاد داشته باشید. تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل بدرود.